بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنت مؤمنين ومن يتفقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا, ورهبا وكانوا لنا خاشعين دیشب بحث توکل رو داشتیم که یه قسمتش موند بحث توکل ما گفتیم اینجا معلق می‌خواد ثابت بکنه که توکل عبادت به وجه عبادت بودنشم اینه که خداوند بهش دستور داده خداوند غیر ممکنه به چیز دستور بده مگر اینکه خداوند خوشش بیاد خداوند وقتی میگه وعلی فتوات تتوکلوا خصوصا اینکه اینجا جار و مجرور قبل از فعل توکل میاره قبل از اینکه بگید توکل داشته باشید مثلا اصل این که باشه که خدا من مثلا بگه و خلو الله ولی خب الله که جار و مجروره تقدیم کرده در لغت عرب چیلین میگن که هرگاه گاه جار و مجرور متقدم بشه تقدیم پیدا بکنه که حقش تأخیره در اصبات آخر بیاد اگر متقدم بشه اینجا دلالت بر حس رو میده یعنی اینجا شما توکل رو تاكله خاص خدا قرار دادید یعنی در خداوند حصر بکنید یعنی فقط بر الله توکل داشته باشید یعنی اعتماد داشته باشید ما دیشب هم صحبت کردیم در بحث اعتماد ما گفتیم بحث اعتماد اعتماد در اعمال ظاهر داریم اعتماد در سر داریم اعتماد اعتماد در ظاهر شد منجر به منجر به حرام بشه چنانچه انسانی بر مدیرش مثلا اعتماد داشته باشه که شاید از کار بیرونش بکنه، رسک و روزی روزیشو قطع بکنه، بترسه و هر حرامی رو انجام بده به ترس از این که شاید روزیش قطع بشه. و در سر اینکه انسان از ولی بترسه، اونجایی که اونجایی که باید, باید از خدا ترسیده بشه، اونجایی که باید به خدا اعتماد بشه، شخص به ولی اعتماد میکنه به اون کسی که غایبه، اون کسی که حاضر نیست، اون کسی که از برنمیاد اون کسی قدرتو توانمن نیست بهش اعتماد میکنه خب این انواع توکل یک سری هم هست که الله در شهر اومده در حدیث ازباب تفصیل بنسبه افعال اقوال و اعتقاد بحث توکل درسته که عمل قلبی هست گفتیم اعتماد قلبی هست و اتخاذ اسباب و گرفتن اسباب ولیکن این قضیه توکل و اعتماد شاید در عمل ظاهر باشه، شاید در اقوال باشه و شاید در قلب باشه. مثل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم که اشخاص هزار نفر وارد بهش میشن بدون حساب. بعد صحابه میگن که کی هستن این اشخاص؟ رسول خدا میاد داخل منظرش، صحابه اختلاف میکنن بعد میاد بیرون، بعد میفرماین هم اللهین لا يكتبون ولا يتطيرون لا يكتبون ولا يتطيرون يتطیرون دیگه سبو بود؟ و لا يسترقون و ربهم يتوكلون و على ربهم يتوكلون. هم الذین لا يتوون فعله جامل زبارحه کسی که همینطوری داغ میداره خود رسول الله داغ گذاشته خود رسول الله صلی اللہ و وسلم داغ گذاشته بر اصحاب جایی که نیاز بوده مثلا جاهایی سم بعضی از سمها که در بدن انسان میره انسان مجبوره داغ بذاره که سمش برطرف بشه یا مثلا بعضی از مریضی ها خاصه که درمان میشه با داغ بذاشه ولی که انسان همینطوری داغ بذاره این عمل این فعل شاید حرام باشه چون خلاف وقت یعنی همینطوری چیزی که سبب نیست ولی شما سبب قرار میدید شعر به همون میگه هم یا عباد الله تداوه ولا تداوه بالحرام فا این الله لمندل فی محرم علیکم مندوا این دستور به چیه؟ دستور به اتخاذ اسباب، اون وسیله صحیح اون وسیله ای که پاسخ میده جواب میده درمان توش هست مثلا دلپرس انسانی که اعتماد میکنه توکل میکنه بر پارچهی که بر نمیدونم اون کنار زیارت میگن کنار ولی میگن کنار نمیدونم فلان چیز میگن حالا این پارچهی پارچه ای سبزی که به اون درق همون ذات انواد داریم دیگه در حدیث داریم که در زمان الله علیه و سلم ادوهی که تازه مسلمون بودن دیدن که مشرکی درخت ذات انوات را دیدن وقتی که درخت ذات انوات را دیدن امدا گفت يا رسول الله اجعل لنا اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات اینا موسوکین جو مشرکین این طاق‌ها رو آویز کردن شمشیر آویز کردن برای تبرف برای ما هم چنین چیزی قرار بده اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات بعد رسول الله صلی الله علیه و والله مثل والله لقد قلتم كما سالب بني اسرائيل موسى اجعل لنا هم هرتي كه بني اسرائيل به موسى زدند وقتی که از دريا نجات یافتن از دست فرعون رها یافتن دیدن که مشركين کنار درختی میچرخند گفتند به موسى برای ما هم درختی قرار بده که متوسل متورك بهش بشيم اعتماد داشته باشم بر یک چیز ملموس محسوس نه بر خداوندی که عالم غیب و و قادره و رحمان و رحیم گفتند رسول الله صلی الله علیه و اینجا می‌فرمان به اصحاب والله لقد سالتكم كما سال من وصائل هم همون سوالی که بنی اسرائیل از موسی پرسیدن همون چیزی که آنها خواسته شما از من خواستید پس اینجا وقتی که انسان چیزی که وسیله نیست هیچ دلیلی در شهر نیومده بر اینکه وسیله است شخص بیاد وسیله قرار بده شخص بیاد وسیله قرار بده چیز دلیلی برش نیست مثلا بعضی چیزها روح میده مثلا انسان شاید بهش توجه نداشته باشه مثلا شب دوستا اشاره کردن بحث غوری یا مثلا پارچ آب اگر مثلا دهانش فرد دهانش روح شخص باشه میگه روشو بر بگردون نمیدونم دعوا میشه نمیدونم کلیدو به هم نزن نمیدونم شب چهار سنبه ناخولو نچ حالا جاهایی شاید از باب وسیله قرار دادن و جاهای شاید از باب تشاؤم باشه حالا بخص تشاؤم در بعض تطایور خواهد اومد که ایک عمل قلبی هست ولی جاهای انسان انجام میده از باب تبرک نه از باب تشاؤم از باب تبرک از باب تفاعل نیک مثلا این پارچه سبز بستن یا مثلا سر عروسی ها مثلا دیشب من بیاد اومد مثلا سر عروسی ها عروس مثلا دستگر رو میگیره پرت میکنه اون دختری که مثلا دلپس بختش بست شده بکنه من رو بختش باز بشه خب این کجا آمد؟ بر چه اساسی؟ اصلا گل پرد کردن و گل گرفتن چه زبت میداره به اینکه که بختش باز بشه؟ اینها جز اعمال شرکی هست شرک از دره توکل بر یک چیزی که سبب نیست ما وظیفمون اون چیزی که سبب هست وسیله هست محسوس هست یا دلیل شرعی روش داریم یا دلیل دنیوی روش داریم بهش متوسل بشیم دوا روش دلیل داریم اما اینکه انسان همینطوری بی یا بیا داغ بزاره خب چه دلیلی داره هیچ دلیلی نداره پس این عمل جواره بعدیش لا سرقون. سرقاء طلب رقیه کردن با قول که مثلا بلفرض من به جای اینکه اعتمادم به کلام خدا قرآن باشه خودم بیام روی خودم قرآن بکنم بیام بگم شیخ من قرآن بکن. اینلا اینکه ضرورت باشه. شخص تلسم نمیتونه مثل این دیگر هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم نگف روم رو بخون. عایش میگه دست رسول الله صلی الله علیه و سلم میگرفتم روی کف دست رسول میخوندم. رجاء برکتی هی ما. به خاطر امیدی که داشتن در برکت دست رسول الله صلی الله علیه و سلم برکت در قرآن دست خود رسول الله بدنش بکشیدم. ولی رسولان نمیخواست نخواست خودش خودش رو رقیه میکرد و آش استرقا طلب رقیه است. اگر کسی ما رو رقیه کرد مشکلی نیست که حرام نیست یعنی ما مرتکب حرام بقید بحث اینجاست که ما اون چیزی که اصل وسیله هست قرآنه ما داریم این قرآن رو وسیله یعنی وسیلهی داریم قرار میدیم به اسم شخ ولی این شیخ نمیدونم دعاش مستجاب این شیخ مثلا آدم صالحیه پس دعاش مستجاب خیلی برکت تو خود قرآنه شفا در خود قرآنه وقتی نادر جوهری بخونه یا کسی دیگه بخونه وقتی که انصاف روی یک نفر ده نفر خون دیگه راحت میشه هی میگن من فلان شیخ میخونه فقط نه این دعاش ردخور نداره از کجا اومد که ردخور داره میگه من پیامبرم که دعام مستجاب بشه بس بس قرآن قرآنی که داره شفا میده وقتی که من وسیله داده قرارداده‌بشم اینا میشه توکل بر کی بر شخص نه بر خداوند نه بر کلام خدا به خاطر همین که شخص از این درجه از این مقام از این مقام محروم میشه و همون الذين لا يكتبون ولا يسرقون ولا يتطيرون تطیر بدبینی هست تشاؤم فال بد فال بد همون ناخوشیدن گفت چه ناخوشیده چه چهارشنبه یا همون سر غوری رو مثلا به طرف کسی کردن مثلا نو تشاوم بدی هست چرا وقتی داره اصلا به هم زدن یا نمیدونم ناخوشیدن چه وقتی داره کی گفته در شرع اومده آیا طبیعت اینو ثابت کرده صد طبیعت چه رفتی داره اصلا بفرض هم یکی بگه مثلا من این کارو کردم عصب زدم صبر اومده یا میدان فلا برم برام پیش اومده آیا این دلیل میشه خیر هیچ وقت دلیل نیست پس این بحثا خیلی مهمه که انسان اعتماد کاملش به خداوند باشه و اون وسایلی که هست استفاده میکنه از این اینکه خداوند دستور داده استفاده بکنه حالا رقیه هست دلیل شرعی روش هست دواه هست بازم توصیه رسول الله روش هست یا عباد الله تداوی اتخاذ اسباب بعضی ها فکر میکنن توکل این که فقط ما اعتماد به خدا داشته باشیم، خدا خودش بخواد روزی میرسونه. خیلی اینطوری نیست. یکی از دوستان میگفت روزی از یک جای رد میشدن، دیدم یک بنده خدایی میخواد بره یه جایی، دیدم اه... کیفونه میدلنم وسایلش رو برداشه، پتو بالشم دستش هست. گفتم بهش برم برادی یه بیارم، این وسایلتو توش بذاری. گفت که نه، اگر خدا بخواد تو این کیف میره. خدا بخواد میره درست، ولی خدا ظرفیت داده برای هر چیزی. این همه پتو این قد پتو به این زخامت تو این کیف نمیره نه خدا خود میره. میگه پاش گوزاش روی اون پتوها این کیف و از بس که فشار داد از اون ور تهش جدا شد. خدا نخواسته. خدا هر چیزی جایی براش قرار داده، جایگاهی براش قرار داده. اینطوری نیست که آقا خدا بخواد من خوب میشم. خیر. خدا بهت گفته برو درمان بکن انسان باید چند درمان باشه، مثل بعضی از پیرمردها هستن. آلا نمیدونم از ترسشونه از نمیدونم بگیم وسوسه شونه سن از آدم قدیمی هستن سن سوزن هیچ وجه استفاده نمی کنم یکی از پیر مردا حج نرفته با خاطر چی سوزن با خاطر که سوزن واقتنه حج ندنه خب این چیه این یه نوع عدم اتقاد اسبابه حدم اتخاذ اسبابه خب این سببه برای اینکه مریض نشی یا عباد الله قاه تداو بوکسان زاده از شیخ بن باز رحمه الله سوال میشه که حکم واکسن چیه میگه میشه مریضی نیامده ما درمانش بکنیم حکم واکسن چیه گفتن این شرکه این نمیدونم توکل توش نیست این نمیدونم خیلی توکل می میداره از عوام خیلی اصلا امتنا میبرن حالا همش از سر سوزن باری سزن... که حساس شدن می زدن ما نمیدونم سوزن چی هست می زدن سلو نمی دونم و با او ازش. شوخ من باز دوکف گفت مخفییت یکم آروم تر، یکم آروم تار. آروم بگیرید. این مسئله انطور که شما تخیلتون، فکرتون هست نیست. ما داری رو این درمیگذره، رو واکسناسیون ما داریم. گفتم عجبا، داریم رو واکسناسیون نه؟ گفت بله رسول الله صلی الله علیه و فرمودن کسی نیست که دانه خورما بخور عجوه مگر اینکه سحر حساد بهش نرست. مگر اینکه سحر حات به اثر نرسه اگر ام هست باطل میشه با بخورم عجبه خب این پیشگیری هست یا نیست کسی اگر این چیز شرع تایید کرده خورمای عجبه خوردن برای پیشگیری از حسادت و سحر و جادو اما اینکه انسان امتناع به از واکسن به اینکه توکل خدا توش نیست خیر از توکل بر خدا اینه که ما استفاده بکنیم جلو خلج اثر رو بگیریم اون بچه رو بزنین واکسنش بزنیم، چون پزشکی، علم پزشکی ثابت کرده که این چیزین ویروسی هست، حالا یا خودساختگیه یا در اثر هست که انتقال پیدا میکنه ما با تشخیصی می‌خونیم. نه اینکه این قضیه رو خلاف توکل و خلاف توحید بدونیم و بگیم نه این قضیه شرکه چون بعضی فتو داده بودن که این قضیه شرکه. این خلل در توحید خیر، خلل در توحید نیست، خلاف توکلم هم نیست. بعد از اینکه سه مسئله رو ذکر می‌کنه هم الذين لا عمل جوارح لا یا سرقون که گفتیم قول زبانه و لا یا تطیرون عمله قلبه این ستا رازت میکنه برای هر تا مثال میزنه بعد میگه و وعلى ربهم یتوکلو این کار را انجام نمیدن بر الله توکل میکنن پس توکل در اعمال جوارحه و اینجا مثال زد براشه توکل در اقوال زبانه و توکل در اعمال قلبه اعتماد بر خدا داشته باشیم در اون اعمال قلب مثلا بالفت اگر فردا استخدام شدیم مثلا کارگیر بعد یا کارگیرتون نمیاد مثلا طرف توی بانک ربوی کار میکنه میگه خب من اگر این بانک رو بکنم میاد سوال میپرسه چه کار بکنم میگم خب بانک ربوی درستی میگه شیخ اگر من رها بکنم کی رزق روزی میرسونه خلاف توکل کل اعتماد به خدا بنده خداوند رزاقه این وسیله حرامه هیچ وقت حرام درمان نیست و من یهق الله حیاج لهم و اگر کسی تقوای خدا را پیش گرفت خدال مخراج دری را برش باز میکنه. انسان نباید اللا که ضرورت ایجاب بکنه مثلا ضرورت اونم بحث مرگ و زندگی هست. انسان نمی میره اگر در بانک رولی استقلاب نشد. میتونه هزار کار دیگه هست میتونه انجام بده. هیچ ضرورت اضطرال روش نیست که انسان بیا تو بانک رولی کار بکنه. بانک کارش ربا گفتن گرفتن. بس إنسان إن جاء اعتمد القلب بر الله بشير الله خذ رزق, رزق رزيرتانه فمن اعتمد بالالله ميكونا ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويجعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا قاشين الله أكبر بحث أنبياء قضوا باندر إنهم كانوا يسارعون في الخيرات انها هميشكي شواب من اندار از جمله اعمال اینی که پیشواه بودن درش بحث دعا بود که از رغبت و رهبت انجام می دانن رغبت یعنی چی؟ رغبت اصل رغبت رسیدن به میل محبوبه یعنی اون کسی که ما دوست داریم رو از, خود، از خودمون راضی نگه بداریم یعنی بریم به طرفش با فعل مستحبات انجام کارهای نیچ یعنی انسان مثلا شاید نیازمن نباشه مثلا انسان الان احساس نیاز نکنه در خودش ولی بیاد دست به دعا برداره پروردگار علم نافع ازت میخوام پروردگار در علم برکت بیاندازد پروردگار همسران نیکی بهم هم بده ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین این دعای نیکه نه که انسان بگه من یک زن دارم اتفاق می کنم نه دیگه از صد چه کم میشه اگر دعا بکنی ربنا هب لنا من ازواجنا ازواجمون خب این بس خیلی مهمه که انسان خودش حداقل از دعا محروم نکنه فرزندان صالح علم نافع خوشبختی سعادت مندی شادی انسان برای خودش دعا بکنه ولی انسان متاسفانه میگه من نمیدونم چی دعا بکنم عجب چطور نمیدونه چی دعا بکنه یک شخصی عمره دو رسول الله می میبینم شما خیلی دعا میکنی من نمیدونم چی فدا بگم گفت خب چی دعا میکنی گفت میگم ای خدایا وارد بهشتم کن مرا جهنم نجات نجات بده گفت که حول هنودنده ما هول همین بیچاره‌ای حداقل اس نمی دعای مغفرت بکن حداقل حد دعای بهش بکن دعای جهنم اینو که میتونی که از خدا پناه ببری از جهنم دعا بکنی خدا نجاتت بده از جهنم اللهم كن اعذاب اللهم كن عذاب النار حداقل حد اینو که بگی یه پروردگار نجاتم بده از از جهنم پس انسان باعث تخربات خودش رو به خدا نشون بده باید در دعاست اینجا میگه و یدعوننا راغبن بسیاره قدابنده یدعوننا دعا میکنن دعای مسئلت هست و دعای عبادت یعنی همون تحجد خوندن رغبتو و مین خودش انسان به نسبت خدا نشون بده با عمل این نیست که انسان ادعا بکنه خدا ادعا را از ما قبول نمیکنه. ادعای خدا باوری رو مشرکین داشتن كل ما في السماوات والأرض ليقولون الله الله الله اشتهى بل يقبول نشهد قل إن كنتم تحبون الله أكبر وقال الله رجل السري فاتبعوني يحببكم الله اتباع في ربي عمل كذا خذ عني مناسككم صلوا كما رأيتم المنصر نماز بفنشنا من نماز يكون مثل رسول أبودان لقد كان لكم في رسول أصبة حسنة اصفه گرفتن گرفتهن، گرفتن از اساساً مثل رسولان بودن در نمازهای سنت قبی و بعدیه در اذکار بعد از نماز، اذکار صبحگاه و شامگاه، اذکار خواب، اذکار دسی رفتن، مطابعه اینو خدا میخواد اگر اینو انجام بدیم اونجا هست که رضایت محبوب بر ما كا... ما کسبش میکنیم و جلب میکنیم رضایت محبوبمون. این رضایت الله را کسب میکنیم اگر این کارو کردیم، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحبب یعنی در در من در ازای اتباع و پیروی و متابعت و عمل محبتش گذاشته یعنی اگر شما ادعا کردید عمل نکردید خط خبری از محبت من نیست فکر طبیعونی چون به اتباع و عمل انسان با رقبت میلش به طرف خدا نشون بده نه اینکه فقط ادعا بکنه و اینجا خداوند الگو را میذاره برامون اینان که مسابقون در خیرات و نهی که برایم الملغو بودند از یمران خدا یسارعون فی الخيرات و يدعوننا رغبا و رهبا بحث رهبا گفته شده رهبا از از رهبت از ترس همروح با فرا غریب غریب شخص غریب بکنه غریب بکنه از خشم خدا به طرف خدا میل داشته باشه رغبتشو نشون بده با اعمال نیک و امیدم داشته باشه رجا داشته باشه که خداوند ازش می‌پذیره خداوند من... یعنی خواست زن به خداوند داشته باشه که خداوند عاقبت به خیرش میکنه و در کنارش از خدا هم بترسد شکتی که غلبه برش میکنه ترس دیگه اینطوری نیست که انسان دیگه یک جنبه باشه یعنی رغبتش به سوی خدا رو از بین ببرید یک طرف رغبت در قلبش نباشه بس فقط از خدا بترسه این چیز قابل قبول نیست مثلا کسی که فقط از خدا میترسه مثل خوارج فکر نکنید که خوارج این قولشون از بی بیتکویشون بود نه اهل قیام و تهجود بودن حتی توجه که رسول الله میفرماین میفرماین که شما نمازتون در مقابل نمازون ها تحقیر می میکنید نمازتون تحریر میکنید شدت خشوعشون در نماز بلکه چی این قرآن فهمش از جلوشون تجاوز نمیکنه جنبی خوف را ترجیح میدن بر جنبه رجا و امید و رقبت بسوی خداوند میل داشتن سوی خداوند همشتر تو جهنمی هستی تو کافر هستی مجرد که شخص گناه که انجام داد این کافره تا جایی که شخص در یعص ناامیدی میره اگرچه مرتکب کبیرهی شد سب بعضی فتما میدن در توبه را بر اشخاص میبندن مثلا میگن که میگن که قاتل توبه نداره وشنو نامه مال حرف شما فرمن به نتیجه ها نمون نگاه مخالف القرآن ان الله لا یغفر ان یشرک به و ذلك لمن یشاء خدا فقط شرک اکبرو نمیبخشه ولی دونه اون رو خدا نمیبخشه شخص مرتکب شرک اکبر شده باشه حالا که توبه تک نمیپذیره میگه من قاتل توبه نداره چی گفتی توبه نداره نه الله ان الله ابا یغفر للقاتل اگر خداون این حدید سبب نزوله در اصامه بروزهیده اگر اصامه ای که اون شخص را بعد از... کشت بعد از اینکه الله را گفت اگر توبهشون نفذی رفته بود پس چرا سرلشکر قرارش داد وقتی که رسول فوت شد میگه سرلشکر اون ارتشی که گذاشته بود برای حمله به بر روم میگه اصامه نبود اصامه بود او بعد گفت که من عمر را با این گفت عوضش کن اوباد گفت من نه عوضش نمی کنم خب اینکه اینه که رسولات صلی اللہ علیه وسلم توبهش رو پذیروف نه اینکه که حکم غدت رو برش اقامت بکنه چون الله کافر شده چون توبهش پذیروفن پس گردنش بزنیم چون حد مرتق سیفه دیگه گردنش بازده بشه ولی این کار رسولات صلی اللہ علیه خب اگر ما بگیم تو توبه نداری اگر بگیم خدا تو رو نمی جنبه رجا و امید راهز بکنیم منجر به چی میشه؟ می من یه نفرو کشتام جهنمی شدم و ده نفر دیگه هم میگوشم مال شما نگاه بکنید حداقل وقتی که ما این در توبه رو بر بنده بستیم چی میشه یه نفر رو کشت ده نفر دیگه را میکشه میگه من که جهنمی شدم که شدم مثل همون کسی که 100 نفر رو کشت 99 نفر رو کشتی بود اون وقت پیش راهبی تو کتبه دارم گفت که نتوبه نداری آفیش آبدی اومد بعد پیش راهب گفت نه توبه داری بعد خداوند اون رو بخشید حالا بعد از اشخاص میگه نه اینکه که شرع قبل ماست ما کاری به شرع ما قبل, قبل نداریم بحث بحث ما اینه که اگر یک شخصی مثل این کسی که 99 تنگ رو کشته بود اگر شما بگید قاتل تو به نداره منجر میشه که ده نفر دیگر سد نفر دیگر هم بکشه مثل این شخص کومت اون عابض را انسان باید بسنجه بین این دوتا بال بالی که درش هست اینجا که انبیا داشتن این دوتا بالی که علمان میگن که انسان را متوازن و مساوی و بقول معروف اعتدال انسان رو حفظ میکنه باید این دوتا بار رو داشته باشه حیوانی پرندهی که یه بال داره با یک بال پرواز میکنه آخرش میفته باید این دوتا بال باش پرواز میکنی امید به رحمت الهی حسزنه به خدا خدا ما رو بیبخشه و ما رو وارد بهش میکنه با همین امید ما داریم میریم نماز رو فرض میکنیم برمیگردیم و از طرف دیگرم از عقوبت خدا از گناه از معصیت هم باید بترسیم. که نکنه اگر معصیت از من شده خدا عذابه بکنه خدا عذابم بده. باید این دو تا پر این دو تا بالو داشته باشه که بشه بتونیم درست پرواز بکنید اما اگر یکی بر دیگری اگر امیدمون غلبه کرد دیگه خودمون رو از عذاب الهی در امان نیست الان ارجاد در تمامی مردم هست به طرفی که گناه نکن، ربا نگیر، حجابت و کن نگه، ایمان که در قلب قلب صاف باشه پاک باشه. این ارجاء است. این تأخیر عمل از ایمان این خارج تاختان عمل از ایمانه این امن از مکر خدا بنده. که ما خودمون رو از, از عذاب خدا در امان بدونیم و بشماریم جنبه رجا را غلبه داده خدا غفور و رحیمه درست خدا غفور و رحیمه بلی شدید العذاب و شدید العقاب هست اگر یک جنبه از اینها را ترجیح دادیم غلبه کرد طرف رقبت و طرف رجا و اینها اگر،, اگر بر ما غلبه کرد ما هم قران ده میافتیم برای این طرف اگر اونجا معیوس میشیم اینجا در امن از مکر خداوند میافتیم چنانچه خداوند نقش میکنه اف و مکر الله فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون تنها کسی که خودش از مکر خدا در امان میدونه خسارت خسارت کنندگان و زیانورانن اونایی که در خسران و زیانن اوناها خودشون در در امن از مکر خدا میدونن میگن که ما عذاب خدا بهمون نمیریسه عذاب خدا نمیاد ما مشمول مغفرتش میشیم و خدا من ما رو نجات میده از عذابش اگر این جنب به غلبه کرد دیگه انسان خودش دیگه در امان میدونه از خرق گناه خاص انجام میده میگه من خدا خدا غفور رحیم مرا ببخش باید این دو تا بول بشه کلان چه پیامبران خدا بودن انکم قدی سرعون فِي خیرات و يدعننا راغبا و رهبا و کانوا و خشوع زلته خشوع زلته در مقابل اوامر الهی و این هم کنلن قاشعی ادامه همون رنبت و رهبت ها یعنی در پذیرش اوامر الهی پذیرش اوامرش انجام دادن واجبات و جوری از محرمات و انجام دادن مصحبات هم همینطور اونها سارعون افل خیرات در خیرات داشتن یعنی پیشه میگرفتن بحث احسان پیشگیری در اعمال نیک همونطور که در حدیث جبرئیل وقتی که میاد نزد رسول الله براتب ایمان رو میگه بعد مراتب اسلام و بعد مراتب احسان این مرتبه احسانه همونطور که خداوند در قرآن میفرماید ثم ورثن الكتاب الذين اصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصت ومنهم سابق بالخيرات منهم سابقون بالخيرات بحث انبیاء خداوند که سبقت داشتن در خیرات و من هم سابقم بالخیرات در بحث مرتبه ایمان ما در عقیده داریم که سبقت در امور خیر که یکی از سبقتهاشون در بحث پذیرش اوامر الهی و فوق اون انجام دادن مستحباته اون چیزایی خداوند ازش راضی بشه و خداوند هم از خضیه خشور در قرآن مثال میدنه بخاطره که ما معنای خشوع رو در بکنیم چنین خدا من و من آیاتی انک تر الارض خاشع از دشان خداوند خدا من اینکه زمین رو خاشع می مینید خشوعش در فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت و رابط آب باران که ریخ شکاف فرمی دارد اون شکاف ها از لابلوی اون شکاف ها غنچه اون نبات اون درخت اون نمیدونم دونم علاق بی امید. خشوحه. دستور خدا را پس گفته. اطاعت داشته بر دستورات خداوند خدا یعنی بر سر و چشم این خشوحه. این زلطه در مقابل است. بند. اثبات بندگی هست. خداوند گفته من می پدرم و بهش عمل می کنم. و خد عمل الحمد لله رب العالمين و صلی علی محمد و آل محمد